اینلات رحمت الحمد لله رب العالمين الله و عمد رسول الله و المعصومین اللهم و رحمت استاد بردی از معاصلی یعنی حالا قبلتی شما این بخشی و نام دولان, دولان همده این تخصیص و نص مطرح کردن و خود از استاد همده این در تمام موارد همده بر تخصیص خواهد شد یه صحبت های راجعی این مطلب شد و توبیه ها بیدازه شد از اگر ما باشیم و ظاهر این بخشی که در این کتاب‌های های احلام آمده زادر چیده از کناسا یک کلامی باشه که محتمل باشه نصد باشه محتمل باشه تخصیص باشه نه اینکه که صورتن در آن هم بیر نقص و تخصیص تخصیص باشه واقعا شواهدی هست که نقص و شواهدی هست که تخصیصه و در اینجور هم دور نقص کنیم تخصیصه اما مثالتایی یعنی صورتی رو که بیشون نرم بسید صورت 36 متعیم اصلاح تخصیص این جایی تطور نفس نیست که تغییر به در درمان نرد در به این تخصیص نیست اگر مولانی مثل طارق برگی مرادشون اقدمان اقدمان برگی و در, در سه مورد تردیر نرد تخصیص و جایی نفس نیست یکی جایی این بخش نکاهد آمد این رضا که به صحبت ایشان از شکه اصل مسئله در میان کتب احرس و چی بوده در این مسئلهی به نام درانه بین در نفس و تخصیص و عدیل حرفا وجود داشته و چه کاری باید مسئله درانه اصل شد که در, در کتب احرس و نت در این که تخصیص و نت در پیش یک نتیجه داره و من هم خوش به ناسه حرمان نیکنی تخصیصم خوش به هم حرمان نیکنی از اینجا وقتی می‌گویم ولادت کردن، ولادت بود که اون خسالو ما در, در, در دیگری نیست در خود آمریکا سلام خودش. حالا اینها از رو که یه بحثی دارن در فرق بین تخصیص تحقیق سنت که بحث از شوهری رو که با استاد با این بحث می‌کرد. اصلا صورت اول استاد این بود که ما اگر کلام خاص متقصده به آن باشه اینجا تخصیص احتمال نسی نیست اینا این بحث به این عنوانه که شرایط تخصیصی نسی متقصده باشه نسی نمیشه متقصده بشه باره متقصده بشه معنی داره که انسان بگه این حکمی جرد کردن برگیه این حکم برداشتن بحث لفت بگیه بلا خاصه برداره بعدا جرد یک بحث لحب. لذا اینا در حقیقت این بخصیم بحث بخصیم درگران نیست بحث تشخیط مواد نسخ از موارد تخصیص از مثلا پرسوم در نفاصل اصول در شرق محصول فخرازی در خود فخرازی در کتابش پنج فرمزده کرده فوقی زکش ده اونجا تنش اینجا بیشتر در کتاب از محران محیطه درکشی، یا زرکشی در درکشی. ایشون بیشتر ذکر کرده در صفحه سی ست و نوید و چهار جلده تخصیص شدید و شبه به نفر لشتراکه ما فی اختصاص خوف به نقض ماید یا به بعض ماید تنافی؟ به ماید سناولا فرصف رو بینه ما به وجود ایشون وجودی که او هیچده تا فرق ما بین تخصیص و نصده کرد بعضیاش رو هم اختلافی اولش اینه که تخصیص ترک و بعضل اعیان و نصد ترک و بعضل از ما اینه همون مطلبی بود که استاد رو این بیشه شما اونجاست. حالا این یا درست هر درست نیست رو خوبشون هم این بحثی کلمه فیلن یه بحث نمیشن که نصد با تخصیص فرقش اینه در تحسیز و این خارج میشه یه ارکم العلمان و این ایلا شکن خوشتار علمان در نفس بلاحات زمانه یه ارکم العلمان و از امروز دیگه اکلام این واضح هم اما یکی زمانه ایکیش هرده این مطلب رو داره استاد هم داره و که در کتاب نفارس ادهی از افرسانه نمیزادم قبول نکردم حالا من بارد اون بخشتار فرق دوم تخصیص یتنا بلال ازمان ول اعیان ول احوال چون میشه تخصیص به خلاف نصر به نهولا یتنا بلال ازمان بعد هم چیه اشخال نیره آنه اگه اشخالش نیمه از سالت از تخصیص لایه کنو الا لبعض به خلاف نصر چون نصر که همه احوال بگه از این و حتاب القاضی از نه تخصیص تقلیلون و نه سو تبدیلون از این اقایت سجم سجم که سجم که کخان بعد داره که یکیشون گفته ها داره لفظون جمیل لکن معنای درستی خیلی نداره فایده چندزان ری او ری فایده است ولیکن ری او رو قلیل ری یعنی سمره فایدهی مثلا بری باری کم بری و معنا هو مستقيم حالا اون آقا یک چیزی گفته برای مقابله با بعد معنای پنجم نص که سفر الاله در شخص واحد باشه اینکه در شخص واحد باشه یا اشخاص نص داره و تخصیص لازم سفر الاله اول اگه شخص واحد باشه تخصیص بشینه و تخصیصه احوالی چرا؟ مثل که اکرمزه این مذبولات و دمزه این نه تخصیص بلازه افرادی معنای ششون انه تخصیص یبتی دلالت لفظ علامه بقیه تحت هم حقیقتن کانو و مجازن از خلاف و نصف یبتل و دلالت حقیقت المنصوب نصف شون برمیگردیه اصلا دلالتی دیگه نظر کلو اصابه اینه که آقای خوبی فرمزن یجوز و تأخیر وقت نصف خیل منسوخ و عمل تخصیص فلای عدود و ترخیر رو وقت عمل به محسوس رفاقه از داره که این هم بعد اشکال کردن که ممکنه بعد از مساله باشه این, این که ایشون میگه رفاقه که اگر وقت عمل شد و بعد آمن این ناسخه اگر وقت عمل نشود تخصیصه این رو سنیا رو ممنوع خودشون فرم گفتن مرموز دادن اونه هر فرمان داریم تصور که ما در بارد ناسخ داریم حمله بر نقص بعیده البته من دیروز یه توضیح از کردم این مطلب که فرصیه مثلا در سواف در سوم دو جور میشه این روی خط ها اما در خط ما اگر آمد این به این معناسه اعمال این قائده رو زادن به ما من از باید که باید که باید فرموزن به این در این جوجه ها عدلی سوار را مقدم کردیم یه اون رویاب احتمال هم داره که احمد علیه مستان نصر خاصی از رسول الله داشته باشه از سامن یه جوز و نصر خوش شریعتن به شریعتن اخرام اصلا محصیحیت به اسلام نصر بشه ولا یه جوز و تقسیس ات تا ان انن رفع رفق بعد ثبوته به خلاف تخصیص نمود بیان المراد به لب در آمد من به نظر کیمیان. کیمیان قرار داده این اقدر کلامه اصلا یعنی به عبارت دیگر انسان احساس میکنه کنه فهم رو به نصد خیلی واضحه الان فرق رو همون اصلا بکنه نه اصلا بکنه تخصیص اونها توضیح میده فهم رو این چاست این فرق رو و فهم در من فهم تخصیص بیان رو ما ق بیانه و نرس بیان و مالم یورد توضیح بود ارهادی هشت از تخصیصی اجوز و انیکون مخترمن بلا بل مقدم هم از آم و متعخرمن ولا یجوزن نکنن ناصف متقدمان ولا مخترمن بله همون فرق اولی صورت اولی که مرمو مستان برگرد صورت اولی و این بود که اگر مخترم بود باز همه در تخصیص کنید جای نرس نیست صورته فرق دوازدهم عندنا نسخ لا يكون الا بقول و كتاب و تقدير قد اونو بعدل لقول العقل و القرائن اینم حرف بدی نیست مثلا عمل ان بنی امیه تفاسبتا به حکم امر مؤمن ملعون نیست ولو فرق قاصبتا بک این نه شامل مؤمن نمیشه شده میشه مؤمن ملعون بشه اما در اصل با حکم امر نه جنب نسخه این حرفشم بدی نیست چون نصف باید باشه یعنی به اصطور نصف باید در قام نرسه باشه تا به حد قام نرسه نیست اینم نسبتا حرف خوبیه توی هر فرمین همه شخص قرارقاتی داره سیزده و تخصیص در اخبار و احکام میاد. اخبار که جاه رو اما یه نصف تو اخبار نمیاند این چون که اخبار بگیم نصف خون یعنی به عبارت دیگر این بس کرده تخصیص در امور اعتباری هم میاد در امور متحصل هم میاد اما نفس تو امور متحصل نمیاد مگه تغییر عوض بشه مثلا انگور شیره شیر شیره بوده شیر سرگی شیره شدید بوده شراب باشه شراب فردید بوده سرگی, سرگی باشه و الا در امور واقعی نفس معنا نداره مگه تبدل واقعش بشه چهارده تخصیص علال فور و نصف علال خودش خودشون خود در پیغاق نظر این نظر نمیخواد تراخی چونها رفت احمده تنزه ها ان تخصیص المقصود به مجمون واقعا همین که الان آقای خویه هم در که تخصیص عموم کتاب رو به خبر میزنیم اما نصف کتاب رو به خبر نمیخوادیم میشه بیام نصف نمیشه تخصیص میشه این هم مطلب درستیه یعنی این مطلبش بحث مذنون و مفتوب نیست این مطلب یه مطلب صحیحیه چرا؟ چون احسن تفسیر قانون خیلی مشکل نداره این در اقتلال اون که اون پارلمان هم برداد یا شروع نگرمان به اقتلال اما نسخ قانون خیلی مشکل داره یک ماده قانون اصاصی کلن عوض بکنن یه مجلس محسسان این اعتبار و با این مساعده یعنی تخصید خیلی راحت تره تا نزغ به لحاظ قانونی که دیروز صدیشه دیروز اکتره معونه قانونی تخصید خیلی کمتره. چه در مقام واقعه و چه در مقام اثبات. با سانی فرصی مجید شروعه یا شروعه یا از این قانون اینه این خیلی کمتره. اما بخواد یک حکم رو برداره اینی که ایشون گفته که این تخصید المخصو... المخصو... المخصو... اگر مراد کفوازن باشه نه اما اگر مرادش اون نقصه نط... باشه اون نقصی من حد کرد مرادش از مخصوب و مظنوم مخصو آم نهتاتی و غیر آم نهتاتی راسته شونزه هم تخصیص لایت خلوفی غیر الام به خلاف نقصه نوید که حکم آم و خاص خب بیدم درست هم اگر نقصش به مقدار خاص رو داریگه چون هیفته هم یه جوزون از به خلاف تخصیص اگر هم را آمدیم چه الان خلاف بگیم پوچند نیست هم از تخصیص یعظیم به انال مراد العموم این در با ادا که از اون مرد خاص اما در نصر معنیم نه همه اراده شده فقط بردسته شده بعد نیست نتیجه چندهایی ندارم بردسته خب پس بنابراین ما یک مسئله داشتیم به نام هر برینی تخصیص و نصر نه باید مراده های خویی این باشه چون این درمان هم به نصف تخصیص بدن ها یعنی با این مطلب این مطلب درمان هم یعنی جویست که هم شرایط نصف برای شاکم هم شرایط تخصیص اینو نوع اما این آقا بگه نه طبقی این شرایط طبقی این خصوصیات نصف طبقی این خصوصیات تخصیصه بس بحث دیگه درمان نیست بعید نظر مربون افتاد و دیگه این نقطه بوده که در کلمات احیل سنت مفرش یه بحث دیگه دارم. دارن یه بحث رو در این کتاب تقریبا آخرین بحث کتاب این جلدی که من دارم همون جلد دو صفحه 536 خیلی بعد از اون با عنوان بنای آم برخواست او گفت کجا آم رو برخواست اون از ایشون میگه بنای آم خاص یا از کتاب یا یکیش از کتاب دیگری از سنته اون سنتی یا متواطره یا غیر متواطره یا هرداش از سنته اون دوست سنت هم یا هردو متواطره یا هردو غیر متواطره یا یکیش متواطره دیگریش غیره متواطره بیدیم کجاها بنای آن برخواد سونم کجاها تخصیل چی میزنیم این صورت اینجوری کرده. گردن بیارون صورتی که مزمو استاد. اون وقت ایشون میگه که و الحقم الكل فلکل واحد لاکه ماید علاق به نفس این دمایقون المتاخر و نیگن المقدم فقیی هم مثل این کتاب باشه خبر وقتایی نفسی بعد ایشان باید این وقت میشه بله. و اینجا بگه چند قسمه ال اول اینجا نشه انی یراد آمه من خوب شدم این رو کدام تحسیل یورادا یرادا قلعه تحنیر دامه اون آم و با هم بیاد این یر دامه آم و با هم وارد بشن مثل این شنرز در آیتون آمه سن مقبل در یستقیر و حکمها بیانم نبید این رو تحسیل این همونی که من تحسیل کردی که قولی مثلا فیغنده رو زک کل بغر و لاسو زک عوامه این گلاس این هیوان و گابه زمین و شخ اونجور چیزاست این ها بید زکار بشن اگر اینجور شد خاص مقدم از برهان به اجما این مطلب هم از آرخوی نقل کردید که اگر متصل بود اونجا جای تخصیص هست جای بله. چیز نیست جای نفت دیگه نیست بعد ایشون لا لا فرق بین ان الخاص مقارنه ال عام که مقصد ما او یکون ال عام مقارنه ال خاص اون طرفش باشه مثالایش دیدی که حالا وارد بشی صورت دوم دقت کن یعلم تاریخ و عام این عام و خاص معینه مرا اگر تاریخ بود اون نقطه اینه که آی خویا آورده عام اول خاص بعد بخلا بچه خاص اول آم برده اول خاص عمل برده یکی تو این صورت درست دارن که اول خواست برده آم این آمدن گفتن که عام در اینجا ناشخه مثلا گفت بلا توپیم فرصه آمده علمان بلگو اکتمیل علمان یعنی اکتمیل علمان لا توپیم رو در داره یعنی همه علمان اکلامشون واجبه لیکن بین اصحاب ما معروفی است که نتون جمعه دلالی محبولت سعارو زید لا سکر این حساب رولان با خاص مقدمه بر آن مقدم میشه و در نتیجه پسیز میزن روز شد؟ این دو صورت دیگه دو هم تصورت میشه که بستان هم این دو صورت رو آوردن اما اینجا هم در معلوم و تاریخه شن که اون اول هست بعد خاصه این خاصه مثلا قبل وقت عمله او قبل بعد وقت عمله استاد او صد در صد فرق کرده که اینجا تفصیله نه معادل کردن که قبل وقت عمل تفصیله بعد وقت عمل نشه استاد اگر آم هم مقدم باشه قبل وقت عمل اگر خاص مقدم باشه آن قبل رفت الامن گفت تقسیز بعد رفت الامن نفسه شبیه این چهار صورت به هم استاد بردن دوران درران. پس مراد استاد این صورت هم نشونی دوران نداری واضح یعنی دل... به اصطلاح معروف حکم میکنن به این مطلب صورتش یک یه تأخر که از وقت الامن مثلا گفت اخت من قلمان یوم انجمانه روز شنگه گفت یعنی حکمان شد میگو جومانش عمل کرد رو چبه خدم جدیدی این ناسخه فحاغونا یکونو خاصه نا، ناسخه از تو استاد از هالی اینجا هم تخصیص این در حقیقت ایشون بگیر اگر ما یعنی چی ناسخ؟ یعنی فقط ا... اکرامش و ساقه حرامه و یه قدوی ایشون یعنی مرمون استاد که بگر هم برخاصم کنیم با ایشون که ناسخ نتیجه شیخیه فقط تخصیصون برمکنه آثار و آثاره صورت دوم بوم یه تأخر ان وقت خطاب الام اما وقت امن نشده قبل از وقت امن در اونجا وقتی که این بوتن بازن نفته ورزه بوتن تخصیصه بقید کردیم این در این مسئله که آیا چجوری بعد مشکل مخالب و نقل انموظم الهنفیه انمالخاط ازا تأخر ان الام و تخلل بین همه ما یوم چنون مکلق فید من العمل یا عمل یا اعتقاد کان الخاص و ناسخن این مخالف دي دي از ابن دید از خدم مخالف توی این مسئله مثل ابو حمیفه سورت ثوم ان یت اخر الام ان وقت الامل بالخاص اول خاص آمد مثل اگه اولاد سوال ساقال علماء یا مزیمه روز شنبه و اکتمال علماء بعد آم آمد بعد ایش که اینجا بله عام الام علالخواست اندنا ولکن زهب و ابو حنیفه و اکثر اصحابی والقاضی و القاضی عبدالجبار الان الام المتاخر ناخت ناسفان یک نقطه خیلی مهم اختلاف ابو حنیفه و با اینجا هست. که آم آمد وقت عملم که خاص آمد وقت عملم بعد آم آمد اون ناسخ میدونه لذا که به همه افراد باید عمل کرد مثلا ببین در این مثال در قرآن داره که در جنگی که با مشکین هست به اما ب... مننن بعد به اما فدا یا مننت به ما روزه اینگرشون بکنیم یا ازشون پول بگیریم بدن بگیریم چه میگه سربازگیریشی؟ سربازی, سربازی؟ پولیچین یا نستوازی از طور داره شد خرید سربازی, سربازی؟ <تصفيق> فدا اینها كلها ازاد بشن این آیه در سوره محمد صلی الله علیه و آله در سوره توبه داره فتح للمشرکین حيث رجتموه این در سوره توبه آمده سوره توبه اون اون سوره محمد خاصه که اما بعد و لذا ابو حنیفه که دیگه از اینها نمیشه مننت کرد نمیشه فدا اون آیه رو منسوخ قرار بده چون یه اول خاص آمده بعد آن به نزول قرآن به ترتیب قرآن اون وقت این مسئله رو اینها توی تقیق برش آسانی گرفتن خوب دقت کن می‌خوام چون تا حالا آسانی پیدا شد پس یک اثر فعلی الان روشن شد در مسئله اینکه این درगरानी نیست این اعتقال بشه که اگر آم اول آمد بعد خاص آمد اول خاص آمد بعد آم آمد آم ناسفه این تصور بوده نه اینکه در آن هم باید باشد. میگه اینجا میاد ناسفه شد. حالا مثالهای دیگه یه هم هست که فشت شد هم این مسئله یه قصه معروفی هست که ماعز چهار مرتبه اطراف کرد شیدی دیگه تا فیغمبر رج میشه یه دیگه هست ا که آمد و ادعا کرد زنش چین پیغمبر بدن در که از اون افراد بلامه اونیس فرمودند رد یا اونیس الاه امرات هذا او بیوی زنید عین اطراف ترجمه ها اگر اعتراف نستی خداوند به ما تبعت می شود تو این قصه رو چه تو دست ما رو 4 پس این دسته ناصره دسته سنت رسول به را در کرد. ولذا در زنا اقرار <تصفح> <تصفح> به شازوار لازم یک بار همراه مشهور صفوه مسلمین گفتن که درست که طرف داره داره به معنی دسته ماجیزه نه اعتراف داد عامه را. روشن شد؟ نه این ترجمه یعنی یک بار اعتراف یعنی طرفا یک بار این ناصف میشه در قصه شهار باز لکن این رو مسار در قرار ندازه از وقتی اینا میگن که اشکال کردن که شاپیه نظر حرفاش که دیوان دیگه بعد مثال دیگری زده بلا؟ نه نظر شاف کردن احناف که شافعی بود در اینجا قائل می‌شد که تخصیص شده قائل به نسخ شده اشعال به شافعی داد مثال دومی دو هم زده مثال سومی که پیغمبر فرمود شارب الخمر یقتل فی رابعه از اون مرا هم پیغمبر فرمون لا یهلو دم و دم و مسل الا بإحداث چون دم مسلم جایز نیست مگر به یکی از اینها یا مثلا قتل یا زنای محصنه پس این شارب الخمر خالص میشه منسوخ میشه مسئله شهارم حالا این مثال هایی هم زدن مسئله شهارم ان یک تأخر الام ان وقت الخاص اول خاص میاد بعد وقت عمل میشه بعد با با با با قبل از وقت عمل عام وارد میشه اول خاص بعد لیکن هم قبل وقت العمل فه هکم و هکم لذیه قبلهو فه البنا بنامورا تخصیص اصلاح هم نه سم که نه سوازه پس اینا چهار صورت، با اون صورت اولی پنج صورت یه صورت شیشون هم تصابه که انلایی و علم تاریخ خوب ما یعنی یک آم آمده یک خاص هم آمده تاریخیش رو نمیدونیم این در حقیقت دورانه اون صحبت آیه خویی به قطعه اون دوران اینجاست اگر ما باشیم قاعده اون وقت معلوم شد که اون فرض درمان آرخوی کنم پی نفسه درست نیست چون ایشون هر جا آن بخواست باشه همیشه میگن خواست بر آن مقدم مقدم معخر باشه مقدم باشه قبل وقته آن وقت باشه یه مشکل نداره میگه پس این بحث درمان باشن شده چی درمان کجاست؟ چون چافهی معترض بود اگر آن مقدم هم باشه خوب خه ماخر هم باشه خاص اول باشه آم ینا انخواست تیل خورده میشه. اما همینی در بعضی از قائد بود به نه در بعضی از سوال تختی. و لذا که هم میگه نیوج حث اند آلم تاریخ ما که انت شافه ای و ازخوابیی انلخوااص من ها ما یا حوصل آم و قول رو همبلی ها خود احمد المهندش شاگر شاقید بله رویه قاد قاضی عبدالجبار و بعض الحنجی بگیم رویه قاد از استاد ما و از های اصولی ما مثل آدیا و نایلینا و ابو حنیفه و اکس و اصحابه الا کبخف ظهور تاریف ببینیم وقت میگیم و کلون امام خودشون میگیم ذه به ایلام یه هزیه اصلیه و قاعده خود صحبت کرده. اما شافعی فلان نهوبنالعام علی خاص مصلح مسکردمان مسأشران مقارنه الى اولم تاریخ. لکن کی بعض صوری کن ول بنا علاوه جه ناز و کی بعضو علاوه جه تختی. به هر حال خاص مقدرنه نه چه خوشه و لا و جهل، لاتقلون ها و و در احوال استرس. جهل و غیب یاد نزدی. امو در همه احوال گو خاص مقدم. فر وجر یاد می‌الامه علی خاص. و اما ابو هنیفه، لانه او ینسخ خاص، عام ادالکان متقدم عليه. و یخسته سلام علیم، او ینسخ به ادالکان متاخرن آن. آم بعدش باشه. و اندل جهل به تاریخ دار الام علی خاص، بین ان یکون منسوخه. او مخصوصان، او در فعلا تردد فیاض عصام یکی و اتلافو. پس بنابراین روشن شد که این مثال یک ریشه علمی داشته، مترجمانی یک هر اش آمده کتب و حروف ما، کاری رو که علمای سنت که من مدرسه من بود علمای سنت که این طرفیش اون طرفیش توجیهی بر اون قصه داشتند این رو را گرفت. ها اینو نقطه دیگه هم هست حالا برداری یادم برداری این نقطه ها خوب بود یادم باشد تاقریب میزنگم معلوم شد پس صورت دران در حقیقت بین کسایی بوده که در صورت علم یا خائل به ناسف یا منصور یا مخصص با قول میگن در صورت جمعی از این رنبه این صورت نمجم حکم کنیم اما مرموم استاد اون معدماس رو نیگردن یعنی اون مطبع از همه مرموم دارن رنبه این نصورت تختیر پس این دارن رو به این نصورت تختیر روی یک مبنایی بوده که در دردی در از در صورت عام ناسخه حالا هم جمعی داریم اون صورت یا نه خب این داره رنبه روشن شد براتون مطلب اما مرموم استاد از همون اول وارد در باید هم شد این محتضای بارده اختیزا می کند اولا فرق روی نفس و تخصیص بکنن. رو باید بکنند فوارد ازادکیشون رو از حالا مثال برای این مواردیشون خوب بودی می غیر از بیان بعد وارد اون نکته می قبل از تخصیص آیا عام متاخر تخصیص می یا ناسفه کاری به دوران نداری، اول باید خود مطلب روشن بشه بعد در ساعت جهد تاریش دوران میشه ایشون از اون اول از, از, از اون دوران انصاف نشیدی که در اینجا کلمات اصحاب و ما سا کلمات خیلی منسجم عمل نشده یعنی خیلی اونطور واضح و زیر های علمی درست نشد ولذا ما حرف کردیم اونی که فهم اغل قانونی داره به قلمان و اون حرف بدی نیست اصولا هر وقت آن مخاصی باشه یک فهم و اغلائی هست که آم تخصیص میکنه حالا مخاد مقدم باشه مخاد مؤخر باشه چون در فهم و اغلائی خاص و عنوان مفسر و مبین حساب میشه خصوصا با در نظرگیرس اینکه نفس احتیاج به این مرونه زائد داره و غیر از اینکه خبر باشه کتاب باشه نه هر از آیه کتاب مثالی که حرف کرده اصولت این احتیاج به این مرونه زائده داره و به قولنای استاد اگر دو آیه ناظر به هم نباشن ناسخیت شوشنی مثلا در آیه نذر ناسخ میده چون ناظر به همن چون اول کار همون که آیه رو اگه بخوید ناظر بکنید صدقه بدید بعد از عش من منتقدون بیانید آیه رو با صدقه و معنی هم اون آیه ناظر بره اما اگر ناظر نباشن یعنی یکی به دیگری دلیلی ندیشه که ما ناسخ بدونی جای نقص نیست مثلا اما آقای ما منن فهم ما منن رو ما فدار اون وقت ابو هنیفه یعنی این مطلب نشون میده که باز هم مشکل برخور که ابو هنیفه این شون این طور نقل کرده که لمه فی ها به الحال توقف الى ظهور المرجع ذه تروف ترجیفی استعماله ما استعماله ما یعنی بنای آن برخور او استعمال اهده ها نوشته اهده همه باز باشده او استعمال اهده همه اهده همه زکر زکر وجوهن. بعد نقل نرکد از ایشون ان که اما بهما کنه نشیا مردم یعنی یک بحثی داره خود خبر واحد خبر واحد در چیزی که تمامو بهین بلکه با خلاف ما تامو بیل بلا قبول نمیشه مثل نماز خبر است که آ صحیح قبول نمیشه ما تمامو بهین قبول نمیشه اما انیعملن ناس به ما جمیعن فرستعملن بعد مثال از بله و اما انیتت مثالش مثلا اینطور طور یک نه یعنبه ای امالهی اندک داریم از اون طرف امالهی سندک نباشم در سلام اجازه داده شده با اینجا در درخ هموز در سلام اجازه داده شده پس این معلوم میشه که درسته این یکی درست و یکی کم درسته. درسته هر دو جای خودشون و اما انیت تفق و علال عمل به موجب به ما و یسخ تو الاخر و یکی دیگه هم اون جهت دیگه مثال های دیگه من مثال های دیگه هم زده بر این جهت یکی مثال دیگه ترجیح خاصیه ما علی نفس و مفید به حکم شریعه به حکم عقلی و باز ابو عبدالله برسیم تازر کن و عهد الجزئین بیانم للآخر به الاتفاق. اتفاق که اتفاقم نصاب سرقه و عدم العمل به عموم آیه. و غیر زاله که من ال ترجیحات از خبی آیه مبارکه مثل منظور قام اساسی بعد در سنت خصوصیاتش توبید داده میشه تا اینجا معدوم شد که این برسی معلوم اصطاق و رفاقم به جمعه من اعلام قردن خیلی این اصولی و اصولی مناسب این دوران هم به و دست هست از اول باید برمی کنن که در کجاها نصد هست در کجاها سخصیص هست و چه سری هست که در یک جا دوران رو هم پیدا میکنه این نکات رو توضیح کامل داده نشده و از اون تصوری که ما الان ارز کردیم انصافا فهم ارفی اینه که مطلق هم در مقلیت میشه با وحدت مطلوب چه مقدم باشه چه ماخر باشه آم هم به مجرد تقدم و تغذیه نتیجه نداره. و اما اینکه که رضی الله علیه و سلم درسته. از ما ولی تخت و رو علیزمانش نواشی. اینها قطعاً جز بیاناتی که به اصطلاح از رسول الله در اختیار اونها بوده دارد و اهلها بیان می شده. و این تأکید بیان از وقت حاجت خیلی محضور اعلی مستریس نداره روی مثالی خاصی ممکنه. مزاحم به اینکه ممکن است از اینها موجود بوده. لیکن تدریم نشده دقیقا ماها داریم تدریم میکنیم کنیم این که نبوده موجود بوده اما تدریم نشده مثلا ما به بباید داریم که زن از زمین ارث می بعد که نگاه کنیم به خطور برمی سنن این حتی در نوشته های عبدالملک ابن مروان که خلیفه عمری بوده در شام یک مجموعی داشته مثل اسطلاح احکامی که کرده یکی از احکامی این بوده اما خب سن انصافاً که گفتو بحث سنت نه ممکن است بوده بیان نشده این نیست که از بیان در زبان این انواع مختلف داره که باید رو مراجعه کرد صلی الله علیه و محمد و آله الطاهر